فصل پنجم در دفتر تلفن شماره تمام کسانی را که باید به آنها تلفن می پیدا کردم سمت چپ کاغذ اسم آنهایی را نوشتم که می توانستم با گستاخی از آنها قرض بگیرم کارل امونز آینریش بلن، هم شاگردی های سابقم یک دانشجوی سابق علوم دینی که حالا معاون رئیس دبیرستان شده بود به نام کاپلان و بعد اسم بلابروزن، بروزن معشوقه پدرم را هم زیر اسم آنها نوشتم در سمت راست اسم کسانی را نوشتم که در صورتی که دستم از همه جا کوتاه شد از آنها تقاضای پول کنم. پدر و مادرم لئو او هیچ وقت پول نداشت وگرنه مزایقه کرد. و همینطور اعضای انجمن کاتولیک، کینکل، فرید بوئل، بلوترت و ویلد و میان ستونها اسم مونیکا زیلوز را نوشتم و دور اسمش یک پاپیون زیبا کشیدم. کارل مونز تلفن ندارد. باید برایش تلگراف می زدم و خواهش میکردم به من تلفن کند. می توانستم اول به مونیکا زیلس تلفن کنم ولی به او آخر از همه تلفن خواهم کرد چون رابطه ی میان ما چه از نظر جسمی و چه روحی در مرحله‌ای است که خجالت دادن او بینزاکتی است. در این مورد موقعیت نوهنجاری داشتم. برخلاف میلم تک همسر هستم و طبیعتا از وقتی که ماری به قول خودش در وحشتی متافیزیکی ترکم کرده، مانند کشیشی کاتولیک بدون زن زندگی می‌کنم. حقیقت این است که در بخوم به عمد خودم را زمین زدم تا بتوانم سفرم را نیمه کار رها کنم و به بن برگردم. به طرز غیر قابل تحملی زیر بار آن چیزی که در کتاب‌های مذهبی ماری به اشتباه طلب جسمی خوانده می‌شود رنج می‌بردم. مونیکا را بیشتر از آن دوست داشتم که بتوانم آتش طلبم را نسبت به زنی دیگر با او خاموش کنم. اگر در این کتاب‌های مذهبی می‌نوشتند طلب یک زن به مراتب بهتر از طلب جسمی بود. من جایی را جسمانی تر از دکان غصابی نمیدانم ولی آنجا هم تمام و کمال جسمانی نیست. وقتی فکر می کنم ماری آن کاری را که باید تنها با من میکرد با تسفنر می کند مالی خولیایم به حد غیر قابل تحملی شدت میگیرد. مدت ها این دست آن دست کردم تا سرانجام انجام شماره نر را هم از دفتر تلفن درآورم و زیر اسامی کسانی نوشتم که نمیخواستم از آنها قرض بگیرم. ماری اگر میدانست چه به سرم آمده می آمد و بدون لحظه درنگ هرچه داشت به من میداد ولی میدانم که تنها نمی آمد. شش سال زمان درازی است و او به خانه ی تعلق ندارد و نباید با او سر یک میز صبحانه بخورد نباید با او در یک رخت خواب بخوابد من حتی حاضر بودم به خاطر او بجنگم هرچند از جنگ فقط جنبه بدنی آن را در نظر دارم یعنی کتک کاری با تصبح نر. ماری هنوز برای من نمرده است به همان قیاس که مادرم در واقع برای من مرده است من برخلاف مسیحیان و کاتولیکا معتقدم که زنده ها مرده اند و مرده ها زندگی می کنند برای من پسرکی مثل گئورگ که خودش را با یک نارنجک به داد زنده تر از مادرم است من آن پسر ککوماکیوبی دست و پا را روی چمن نزدیک مجسمه می بینم و صدای هربرت کالیک را میشنوم که فریاد می زد این نه این نه صدای انفجار و چند فریاد را هم میشنودم و بعد تفسیر کالیک را که جای شکرش باقی است که گئورگ یتیم بود و صدای مادرم را میشنودم که نیم ساعت بعد سر همان میزی که مرا محاکمه می‌کردند موقع شام بلؤ میگوید تو حتما از این پسره که احمد گئورگ بهتر خواهی شد حتما لؤ با سر تأیید کند و پدرم به من نگاه میکند ولی در چشمان پسر ده سالش اثری از دل نمی نمی‌بیند مادرم از سالها قبل رئیس جمعیت آشتی نژادی شده است او به خانه آن فرانک می رود و گاه گاهی حتی به آمریکا سفر می کند و برای کلوب های زنان درباره ندامت جوانان آلمانی سخنرانی می کند هنوز هم با همان صدای لطیف و بیگناهی که شاید هنگام خداحافظی به هنریته گفته بود به سلامت دخترم این صدا را میتوانم هر لحظه توی تلفن بشنوم. ولی صدای هنریته را هرگز نخواهم شنید. هنریته صدای کلوفت و خنده‌ی زیر داشت. یک بار هنگام بازی تنیس، راکت از دستش افتاد. او همانطور سر جایش ایستاد و در حالتی رویایی محو آسمان لا شد. یک بار هم موقع خوردن غذا، قاشق از دستش توی بشقاب سوپ افتاد. مادرم به خاطر لک شدن رومیزی و لباسش شروع به داد و فریاد کرد. هنریته صدای او را نمی‌شنید و وقتی دوباره به خودش آمد، قاشق را از توی بشقاب برداشت. آن را با دست نال صفر پاک کرد و به خوردن ادامه داد. هنگامی که برای بار سوم موقع ورق بازی کنار بخاری دیواری دچار این حالت شد. مادرم حسابی حسبانی شد و فریاد زد این رویه های لعنتی را کنار بگذار و هنریته به او خیره شد و می گفت چه خبره من دیگه حاصله بازی ندارم و ورق را که هنوز در دست داشت در آتش بخاری انداخت. مادرم ورقها را از آتش بیرون آورد و دستش را سوزاند غیر از یک هفته دل بقیه ورقها نجات پیدا کردند و ما از آن پس هیچگاه نتوانستیم بدون اینکه یاد هنریته بیفتیم ورق بازی کنیم هرچند مادرم سعی میکرد وانمود کند که اتفاق خاصی نیفتاده است مادرم به هیچ وجه بدجنس نیست بلکه به طرز غیر قابل تصوری احمق و خصیص است او اجازه نداد که یک دست ورق نو بخریم و من گمان می هنوز هم ورق نیم سوخته هفته دل میانه ورقاست مادرم هنگامی که فعال میگیرد وقتی هفته دل توی دستش میآید هیچ احساسی به او دست نمی دلم میخواست به هنریت تلفن میکردم ولی روحانیان هنوز یه چنین ارتباطی را پیدا نکردهاند. دنبال شماره تلفن پدر مادرم که همیشه آن را فراموش می در دفتر تلفن گشتم الفونس شنیر دکتر افتخاری مدیر کل دکتر افتخاری برایم تازگی داشت وقتی شماره را گرفتم در خیال به خانهمان رفتم از خیابان کوبلنس پایین رفتم وارد بلوار ابرت شدم و از دست چپ به طرف رودخانه راین سرازیر شدم از آنجا پیاده کمتر از یک ساعت را است صدای خدمتكار را شنیدم منزل دکتر شنیر گفتم میخواهم با خانم شنیر صحبت کنم جنابالی جواب دادم، شنیر، هانس، پسر تنی همون خانم دخترک آب دهانش را گورد داد، لحظه ای فکر کرد و من با وجود شش فاصله ای که بین من بود حس کردم مردد است دخترک بوی اسرارآمیزی داشت، بوی صابون و لاک ناخون میداد این اینطور که معلوم بود از وجود من با خبر بود ولی نمیدانست باید چطور با من رفتار کند تنها از گوش و کنار شایعاتی به گوشش خورده بود بازیگر خانواده که به سیما آخر زده است پس از مدتی پرسید مطمئن باشم که شوخی نمی کنید؟ گفتم مطمئن باشید در صورت لزوم حاضر اطلاعاتی درباره علائم مخصوص مادرم بدم یک لک سمت چپ، زیر لب یک زیگیل خندید و گفت کافی است و تلفن را به اتاق مادرم وصل کرد تلفن ما سیستم ای دارد پدرم سه دستگاه تلفن روی میزش دارد، یک تلفن قرمز برای ارتباط با معادن سنگ، یک تلفن سیاه برای بورس و یک تلفن سفید برای مذاکرات شخصی. مادرم تنها دو دستگاه تلفن دارد، تلفن سیاه برای کمیته مرکزی جمعیت آشتی نژادی و تلفن سفید برای مذاکرات خصوصی. با اینکه موجودی حساب بانکی مادرم شش رقمی است صورت حسابهای تلفن و طبیعتاً از اینهای سفر به آمستردام و جاهای دیگر به حساب کمیته مرکزی گذاشته میشود دخترک عوضی وصل کرده بود مادرم گوشی تلفن سیاه را برداشت و خیلی رسمی جواب داد کمیته مرکزی جمعیت آشتی نژادی زبانم بند آمد اگر میگفت خانم شنیر بفرمایید جواب میدادم منم هانس حال چطور مامان ولی جای آن گفتم من نماینده سیار کمیته مرکزی یانکی های جهود هستم لطفا گوشی را به دخترتان بدهید خودم هم وحشت کردم مادرم جیغی زد و بعد آهی کشید که از آن فهمیدم چقدر پیر شده است. گفت آن موضوع را هیچ وقت نمی توانی فراموش کنی اینطور نیست گریم گرفته بود آهسته گفتم مامان فراموش کنم چرا؟ سکوت کرد از پشت تلفن تنها صدای گریه وحشتاور پیر زنی به گوش می رسید پنج سال است که او را ندیدم باید حالا بیش از شصت سال داشته باشد لحظه ای واقعا تصور کردم که می تواند میان من و هنریت ارتباط برقرار کند او همیشه از این یاد می کرد که شاید خطی برای ارتباط به آسمان داشته باشد با همان لحن مزهکی که امروز هر کسی از خطهایش یاد می کند. یک خط به حزب یکی به دانشگاه یکی به تلویزیون و خطی هم به وزارت کشور دلم می‌خواست خواست صدای هنریت را می شنیدم حتی اگر می هیچ یا گو برایم فرقی نداشت وقتی این کلمه آخر را به اشنیتسلر می مثل گل خوشوهنگ بود اشنیتسلر یکی از آن انگل هایی بود که انگام جنگ در خانه ما زندگی کرد. او نویسنده بود و هر وقت هنریته دوچار آن حالت میشد درباره استعداد ارفانی هنریته داد سخن میداد و هر وقت شروع می کرد هنریته فقط میگفت گوه هنریته میتوانست چیز دیگری بگوید مثلا من امروز این کرهخر را رام کردم یا به فرانسه بگوید وز آقای کانت توپ است هنریته گاهی در نوشتن تکالیف مدرسه به من کمک میکرد و ما همیشه از اینکه او تکالیف دیگران را بهتر از مال خودش انجام میداد به او میخندیدیم به جای صدای هنریته تنها صدای گریه یک پیرزن به گوش میرسید. پرسیدم حالا بابا چطوره گفت oh, پیر شده پیر و دانا گفتم لئو چی گفت لئو زرنگ است میگویند عالم الهی بزرگی خواهد شد گفتم خدایا لئو عالم الهی شدن؟ ندارم گفت برای ما کاتولیک شدنش خیلی نراحت کننده بود ولی روح هر جا که دلش بخواهد پرواز می کند دوباره به صدایش مسلط شده بود و من یک لحظه به این فکر افتادم که حال شنیتلر را بپرسم که هنوز در خانه رفته آمد داشت شنیتلر جوان فربه و خوشلباسی بود که همیشه آشغانه از اصالت اروپا و اراده ژرمنها ها حرف میزد. بعدها برای اینکه بدانم چه است یکی از رمانهایش را رو خواندم. اسم این رمان عشق فرانسوی و از آنچه اسمش و میداد کسل کننده تر بود تنها نکته واقعی کتاب قهرمان مردش یک سطفان اسیر فرانسوی بور و قهرمان زنش یک دختر آلمانی اهل ناحیه موزل با موهای سیاه رنگ بود هر بار که این کلمه گوه را به زبان می آورد که گمان میکنم تنها دو بار آن را گفت اشنیزلر به شدتکان میخورد و ادعا می کرد که یک استعداد عرفانی با میل به ادای کلمات زشت آن هم با چون این ممکن است نابود شود. در صورتی که انریته این کلمه را به هیچ وجه با شغل ادانه کرد خیلی ساده می گفت و برای اثبات ادعایش کتاب پنج جلدی عرفان مسیحی اثر گرس را شاهد میآورد. در رمانش کلمات زشت وجود نداشت و نامهای شاعرانه فرانسوی شراب مانند تنین گیلاس های بلورینی که آشق و معشوق برای جشن و سرور به هم می زدند خوش آهنگ بود و در آخر کار آشق و معشوق عروسی می کردند. صحنه که باعث شد اتاق ادبیات راش شنیتسلر را با حق نشناسی ده ماه از نویسندگی محروم کند. آمریکایی‌ها با آغوشی گشاده او را به عنوان همکار نحزت مقاومت پذیرفتند و به کار خدمت به فرهنگ گماشتند و, و او امروز در بن این طرف و اون طرف می و هر جا موقعیتی پیدا کند داستان گرفتن حق نویسندگیش توسط نازی را تعریف می کند عجیب اینجاست که آدم حقبازی مثل او میتواند بدون دروغ گفتن ادعا کند که درست فکر می کند. در حالی که همینش نیتسلر بود که مادرم را مجبور کرد مرا به سازمان نوجوانان طرفدار هیتلر و هنریته را به واحد آتشبار ضد هوایی بفرستد به مادرم می گفت در این ساعت خطیر خانم محترم همه باید دست به دست هم بدهیم با هم بایستیم و در رنج هم شریک باشیم آخ، هنوز میتوانم او را ببینم که سیگار برگی از سیگارهای پدر درده است کنار بخاری دیواری ایستاده و میگوید بیدالتی هایی که من قربانی آنها شده نمیتوانند نمی خلالی در روشن بینیم به وجود بیاورند که بی پیشوا در این لحظه صدایش واقعا میلرزید که پیشوا کلید نجات را در دست دارد. این کلمات را زمانی می گفت که تقریبا یک روز و نصفی پس از آن آمریکایی بن را اشغال کردند. از مادرم پرسیدم راستی شنیتلر چه کار می کند؟ گفت آلی اگر او نباشد کار وزارت خارجه لنگ می ماند همه یان حرف را فراموش کرده بود عجیب این بود که چطور یانکی های جهود توانسته بود خاطراتش را زنده کند دیگر از اینکه با او آنطور شروع کرده بودم پشیبان نبودم پرسیدم به در چه حال است؟ گفت آلی این مرد خلال نپذیر است همین روزها باید جشن نوت سالگیش را بگیرد برای من یک معماس که چطور می تواند این طور حال بماند گفتم خیلی ساده است این آدم ها را نخاطرات و نه ناراحتی وجدان عذاب نمی دهد الان خانه است؟ گفت نه برای شش هفته به ایشیا رفته هر دو سکوت کردیم وقتی از من پرسید برویم سر اصل مطلب شنیدم که وضعت خوب نیست و در کارت بداورده ایم صدایش محکم و عادی بود ولی من هنوز نمی توانستم بر صدایم مسلط شوم گفتم چطور؟ نکند میترسی از شما پول بخواهم؟ نه ترس بامان شماها در هر صورت پول بده نیستید من از راه قانونی وارد می شوم چون می خواهم به آمریکا بروم و به پول احتیاج دارم آنجا یک نفر شغلی به من پیشنهاد کرده است راستی این یک نفر یک یانکی جهود است ولی من کاری خواهم کرد که اختلافات نژادی پیدا نشود در حالی نبود که گریه کند پیش از این که گوشی را بگذارم شنیدم چیزی درباره اصول بلغور کرد راستی او مثل همیشه هیچ بویی نمیداد. یکی از اصول او عبارت از این است که یک خانم نباید هیچ بویی در فضا پخش کند شاید به همین دلیل پدرم مشوقی به این زیبایی گرفته بود که هیچ بویی پخش نمی کرد اما سروازش طوری بود که آدم خیال می کرد باید زن خوشبوی باشد